ندارتمون 90 دقیقه دو ساعت ساعت ساعت درس 45 یا 50 دقیقه بود دو ساعت برنامه بود 100 دقیقه یا 90 دقیقه بعدم به دونه دونه کلماتو خوندن و بعد معنی کردن خلاصه معنی این این یه،, یه عبارتی بود از وندیداد درباره فضیلت خروج دروس سفید چیلتاچ این نه همون مطلبی که هر مسلمانی بدون استثنا از قول امام جعفر صادق (ع) میده بود که فرموده بودن این مسائل رو از روی بندید اینا رو معنی کرد گذاشته بدون که یک کلمه بیه که این شما جایی دیدیم ندیدیم هیچ هیچ انگار اصلا نمی‌گفت اونم اینو نوشت و بعدم ترجمه کرد و معنی کرد که این خرس اینجوری اون در آسمون هست و همه همی این زدم همون تو هستو معنی کردو طاعت تامشون گرشتن و البته هنه بچه ها پیغامو گرفتن طبیعی شاید از جا نگرشتن نمیدیم ولی در خواهر بله کنم که حالا این خروس اینا که میگه به نوازش بسنیم رزت احترام به یه بذاریم یک هم اینجا یک تاستانی میاد که نسبت دقیقه راجلان اگه آدم درپد نکنه منشو نمی کنم خود من تا مدت ها منشو نمی کنم اون را یکی پاک دستور بود رایش دکردار بعد دور دستور رو عنی وزیره که دست وزارت هم کنم خونیده به هر جای و شهره است نام خونیده یعنی مبارک و خجسته و مرض احترام و در علاقه خونیده به هر جای و شهر اصنام نزد جز به نیچی به هر جای زاند. آدم خوبی بود نیت هم همه روز بسته ز خوردن دلب به جهاندار به شب روزا روزه داشت شب رو هم به طاعت و عوادت من نمیدونم که این مطلب رو اینان همونی که بر خود نامک بوده یا اینکه فردوسی یه تفسیلی یه وضعی از آبدان روزگار خودشو رو میگه برای اینکه اینا کسی که روز رو روزه باشه و شب هم قائم لیل باشه و به طهارت عبادت بگذره این قاعدتاً نحوه عبادت اسلامی ولی به هر شبت محسوسش که آدم خوبی بود آدم محابض و بود چو جان بر دل هر کسی بود توس. نماز شب و روزه آینه بود سر مایه بود اختر شاه را. سر مایه بود اختر شاه را در بند بود جان بدخاخ اختار یه معنیش گرفش و علم تنها کلمه ای که معنیش عوضیه پرچند که حالا بیش از همه پرچم به معنی اون منگوله از دوم نوعی گاب کوهی بوده سیاه که این برای مبارکی شکل منگوله آویزون میکردن به گلوی نیزه روی علم او اسم پرچند حافظ میگه زلف خاتون زفر شیفته پرچم تو. پرچم؟ و زلف داشته بشه اینه که این حرف اصلا مزفره چیز سروش اسلامی داره ناصر میگه از اثر فتح میر باد سمرغند رایت و وزیده گیر به پرچم یعنی باد سمرغند در اثر فتح یعنی شدید به،, به پرچم علم شاه میخوره یعنی علم خودش یه پرچم داشته پرچم جدی از عیده علم بوده اون منگوله روش میگن پرچم ولی اسمای درست درست این وسیله لشکرکشی و نشان روزشتن رایت اخفر دربش علم و لبا اینا سلماست درست این من خیال میکنم که سر مایه بود اختر شاه را اختر اینجا در ستاره و ستاره تاله اونا نباشه گوه که او رو هنوشه گره یعنی مایه خوشبختی پادشان ولی من خیال میکنم که علم و رعایت شاهتون نشون قدرت او هستا وقتی افراشته است که سرمایه قدرت شاه در بند بود جان بدخواه را برعک بزرگترین خطر هم برای بدخواهان وجود این, این, این وضعی همه راه نیکی نمودی بشا. نمودی یعنی نشون دادی نشون میداد راه نیکی رو نشون میاد همه راستی خواستی پایگاه با این می که همش از راه راست خواستی چنانچا پالود اینجاست که سخته داده بودم به بچه ها تنگاه نوات داشتشون غلط نمیشتوندن با اینکه آن معنی کرده بودم فردن در یک کلاسی کلستانش کلست چنانچا پالوده گشت از بدی به تابید از او فره ای زدی برفت من را به افسون ببر چو برتیز رو بارگی برنشن زمان تا زمان زینش برساختی همین گردگیتیش برساخت این سبیت مشکلی میگه وقتی که شاه یعنی که از بدی ها تصدیه شد پالوده پالایش یعنی تصدیه پالوده یعنی تصدیه وقتی که شاه از بدی حالوده شد تصدیه شد و فره ایزدی از اوتا هست اون وقت وزیر یا خود تعموره مهم نیست هر کلونشون باشند برفت دهرمند را به افسون ببرد اینجا یک نصیه خیلی مهم هست و این هست که چند که ملاحظه می کنید یه افسونه احورایی داریم روح ها مجرمی ها در سر ایدون و باقی جاها یعنی بسیار از پاچه ها بودن که با عالم مابرات طبیعی ارتباط داشتن و طبعا چون احورایی بودن و فره ایزدی داشتن نمیتونسته ارتباط مابرات ارتباط جادوی و اهریمنی بشه اینجا میگه شاه یا وزیرش رفتن و احریمن و افتون بستن احریمنش به افسون احریمنی که نمیشه بستش کرد. احریمن به افسون احورایی برده برده برده احریمن را به افسون ببست به اینجا یعنی متیش کرد چو تیز رو بارگی برنشن بارگی یعنی هست تیز یعنی هست دونده میگه که رب احریمن را مطیع کرد بستش مثل عصد سوار شد بعد میگه زینم زین پشتش گذاشت سوار شد و دور دنیا میتازون گذاشت این داستان یعنی وزیر یا احیان خود تحموره است احتمالا خود تحموره است رفت دیب و بعد این که از تا رفت و دیب و به دست و آورد و زین گذاشت به پشت دیب و سوار شد بچه ها همه فکر میگرن که فارد بگشت از بزیر یعنی بچه افرد بعد احریمن او رو به افتون و بعدم شاه یا وزیر سوارش سوار از سوار شد گشت و فرد شد او دنیش نفتون اینه که خود تعموره رفتیب رو گرفت آورد گوش به پشتش و دور دنیا تازون بشت. تو دیوان بدیدن کردار اوی شورش کردن تو دیدن دیوان بدیدن کردار اوی کشیدن گردن لگفتار گفتار گردن کشی یعنی سرگشی و نافرمان فره یعنی اینجا نور دیگه اون تاییده فره رو فره به اون حاله است که دور سر معصومین و دور سر دور سر مقدسین ادیان مختلف حتی در دین ایسا ها هستند این نوری که دور سرش راست اونو بگن پره طابی، طابی، همون نه, نه نه، نه طابی نور طابیدن نور ما صحیح میتونم امکنه معنی برگشتن همین اشتباهی کرده بودن دوستان دوستان همین اشتباهی کرده دوستان <تصفح> خب معلوم شده اتراز شما بزید سر اونا <تصفيق> <تصفيق> اگه نه گفته بودیم هیچ <تصفيق> نه به هر حال ارز کنم که چو دیوان بدیدن کردار او کشیدم گردن و گفتار او شدند انجومن دید بسیار مر که پردخت مانند از او تا جفتر بسیار مر این کلمه مر است که در کلمه شمار و آمار آمدید شمار بله میشه شمار شمار موقع صدوانش همین مره یعنی تعداد آمار هم همین بسیار مر یعنی بسیار دیوان شماره زیادی از دیوان دو دن بنجامن بسیار مرد یعنی عده بسیاری از دیوان جمع شدند که پردخت مانند از او تاج فر اینکه تاج و فر رو از خود جدا چو تحموله ساگه شد از تارشان پراشفت و بشکست وازارش به فر جهاندار بستش میان به گردن براخر به گرز یکی از قدیمتری سلاح هایی که ممکن بوده وجود داشته بوشه گرزه اینکه توخمه و یه سپنگ توخمه سر طرف به فر جهاندار ببتش میان به بر برای آورد گران همه نردیوان هفتونگران این معمولا صفت محصول در پارسی متابقه نمی کنن نردیوان هفتونگر معمولاً، میگه مرد خوب مردان خوب نمیگیم مردان خوبان ولی گاهی به این ترتیب میان همه مردیوان و افسونگران برفتند جادو ستای گران دمند سیهدی بهشان رو همه باسمان با برکشیدند هاو در کتاب آفرین فردوسی مقاله داریم دیو سیاه و دیو سفید و کیفیه درد بسته. و اینکه این, این دیوها چی بودن چی نبود خود فردوسی یه تو مردی را مردم برد چند کسی کن نداره از دانتو در سواهل جنوب ایران از دوران قبل از تاریخ یه عده ای که ایرانی تبا تبایی هستن، از ما هم ایرانی تبای هستن،, هستن، ولی سیاه سیاه نجات شدن نجات سیاه اینجا و این چیز اینجوری نیست، ولی سیاه هست، کاملا سیاه هم. در مینا و جهرام و سواهل جنوب اینا، براقون هستن از اینا،, هستن، از, اینا هستن، از این نیست در چه تاریخ از زنگوار از اونجا ها در روزگاران قبل از تاریخ آمده هستن، کاملا سیاه هم. تاریای ها از بیرون آمدن یعنی در ایران در این سرزنین یه گروهی قبلا ساکن بودن که در هند هم در هند هم این جماعت حالا میگن نجس یا میگن تاریا یا حلال خور که اینا رو به معامله فکم بدتر باشون میکنن و معتقد بودن که اگه سایهشون شون بیافته یه برحمنی اون باید بری خودش تحتیر کنه خیلی بدی دارن ایران احالی بومی خود هنده از بیرون یه ده اومدن اونجا دارن اینا رو چدا نجس و اصلا سیاه شون تقریبت در ایران هم همینطور یه سری دیو سفید بودن یه سری دیو سیاه آقایون او هم آقا تشوردن جا و دادن سر اینا بعد میگه که خط نوشتن از دیوان آموختن ایرانی ها نه یه خط سی خط میرسیم حالا پلسه که کنم دیو یا پیش رو اینا بودون همه با آسمان او هست اسم یعنی سر با آسمان بینید به آسمان رافت دادن و دیو دمنده یعنی نفس نفس دنیدن یعنی نفس دادن یعنی خشبیدن دمنده سیاه دیوشان پیش رو همه با آسمان برکشیدن هاو کنگرس واقعی اون دیو و, و جسته و, و به به راهنمایی وزیرش و به تو مثل است زین پشتش گذاشته و در دور دنیا میترخونهش اوقاتش تخت شد من این بیته رو نمیخونم شده قبلا برای اینکه سخلب دست بیاد میفرماید که مروریاتی پاک در سور بود که رأی ستاد و بسور بود خنیده به هر جاج و شهر است نزد جزب نیکی به هر جایگاه. های روز بسته به خوردن دولت به پیش جهاندار بر پای شب چون جان بر دل هر کسی بود دو نماز شب و روزه آیین او. سر مایب و او دختر شاک در بند بود جان بطاق همه راه نیکی نمودی به شاک همه راستی خواستی پایگاه چون آن شاه حالو دگشت از بدی به تاوید از او فره ایزدی که گفتم که اینجا پارده اشتباه کردن فکر کردن که بد شد و پا و فره ایزدی رو راجبش هست دادم برفت فهرمن رو به هفتون ببست چو تیز رو بارگی برنشد رفت فهرمن رو افسون هفتون بست و مثل اس سوارش شد زمان تا زمان زینش پر تا. این درست کردندش پشتش همین گردگیتیش برطاق شد دیوان بدیدن کرداره او کشیدن گردن به گفتار او شدندن جوان زی بسیار مر یا یا گفتم آمار شمار همین مره که فردخت مانند از او ساج و دیوان جمع شدن که تعمورت رو کلکش بکن اینجا یه مطلبی که قبلا گفتم هم شواهد بسیار ازش کایندید این است که افسون که الان به معنی اهریمنیش معمولا به کار میره یعنی جادو جنبل و نمیدونم ورد و از این حرفا در شاهنامه یه افسون الگوی فریمن گفتنش شده ولی هست یه افسون اهولایی است و یه افسون اهریمنی افسونی که تحمل فرزد دیوان کار می‌بره و اونا رو با افسون می‌بنده این نمیتونه که افسون اهریمنی باشه یعنی که افسون اهریمنی بهریمن کار نمیکنه اصلا ناگزیر باید افسون اهورایی باشه اولا نشون میده که با عالم غیب اونطور اعتقاد داشتم که با عالم غیب مربوطن بعد هم افسونش افسون اهوراییه قبلا هم گفته بود که پری فالنگینفوش اومده بود و خسرو گفته بود از این دست میگه که آقا نوشان بخونن فلسفه 70 سال از اول شروع کن بخون شو تحت نوره شد از کارشون برا شفت و بش کرد حالا نمی فهمیم که وقتی آثار دیوان آگاه شد رفت و بازارشون چیکار برا شفت و پیش کرد بازارشون شکستن بازار یعنی از بین بردن رونق رو و شکوف و هرطاق اما کلمه بازار و مرحوم پورداغود یادمه که سر کلاس میفرمودن که رضا غلی خان هدایت بردشته توی انجمن فرهنگ انجوان های ناصری گفته که این بازار در اصل باز آر یعنی آدم میره یه چیز در اینجا میخربند داره میره خونه اینه که باز آر شده بازار و مزخاره میکرد البته این, این روی شناسی عوامانه است، و اینطور نیست بازار از مستر چریدنه اواجره یعنی باهم چریدن الان در گیلان یه جای اصلش میگن واجارگاه واجارگاه واجار همون صورت دیگریست از بازار و در واجارگاه کاملا باهم چریدن پیدار و بازار ها محمولاً جاهایی بوده که پول که هنوز نبوده سیستم مبادلاتی بوده همینجوری که الان تو ادحاد تا بازار و تا بازار و بازار هست جنس میادن با جنس عوض میکنن اینه که چون با هم معامله میکردن و با هم زندگی میکردن و با هم به اصطلاح وضع زندگیشون روبرام میکردن نشید بازار باز کردم. کردن در عوستایی از اوا چهره که شده از یه ترشده وادیار از یه شده بازار و این در تمام زبانهای دنیا میدونی که بازار رفته به هم معنی و از فارسی برحال شکستن بازار به معنی به کردن کم کردنش رو پور به فر جهاندار بستش میان به گردن باور گرز حلقی از این گرد شاید قدیمترین بوده که بشر در حقیقت مارس و پیوان شنان میگن که اصلا به دست استفاده از ابزار بود که آدمی زاد و آدمی زادی درد این نکته بسیار مهم هم هست که هیچ حیبونی ابزار حتی یکی سنگ به کار نمبره خرص خب حیبونو با اوشید. میتونه یه سنگ بایداره پرد کنه نمیکن بیشتر نکرده نمیکن فقط با صلاحی که طبیعتشون داده با چنگ و دندون و زور بازوی نشون چیزن. اولین پیبانی اولین موجودی که از یه بسیده استفاده کرد یعنی افزار به کار بود در زندگی بشر بوده و به همین ترتیب نیروش همجای افزایش داد برای که مثلا پرسونیسه یا آدمی که میتونسته 20 کیلو 50 کیلو بار بلند کنه با اهرام 300 کیلو بارو رو بلند میکرده. یا همین بسه چماخ که دستش میگیره زورش بنده زور خرسه یه درم بیشتر میشه این است که بعد هم ابزارات تکامل پیدا کنه تا به جایی که سرعت بشر رسونده به اونجا و قدرتش رسونده به اونجا و الکترون در خدمت خودش گرفته هر کاری دیگه درش مخوا این از که این گور احتمالا چون ساختنش همه چیزی یه چماخ بوده دیگه برای دیوان میگفتن سلاحی که دارن که دیوان فقط هم یه سلاح هم دارن هیچی دیگه ندارن اونا هم اینجور به نظر میامده که خیلی در مراقل یه چیزی همش میگن دارشمچت دارشمچت هم مثل یه چوبه میگن که اینو سوراخ می‌کردن می‌کردن سر این شو یعنی شو داشتن و تنها سلاحی که دیوان کار می‌فرمودن همین گرد بود چیزی که شمشیر و تیر و کمان و نمی‌دونم این حرفا نیست یا سوار نمی‌شدن مثلا در جنگ تا اونجایی که رفت بشود به هر حال این گرد اولین سلاحی از اسم برده میشه دیدین شنیدین همینجا گفته بود قبلا که سلاح نبودم همه برهنه جنگ کردن لخ بودن نرو سر سیامک میگه دیگه اینست که روزگار خیلی قدیمی است و باز عرض کردم که جنگایی که در این دوره اساطیری اتفاق میاده با دو بیت سرسرش هم میاد چنان که همینجا ملازمی بست میگه فر جاندار بستش میان میان بستن علاوه بر معنیه که بستن کمر به معنی آماده شدن هم هست البته این معنی از این لحاظه که هزاران سال هزاران سال بشر لباسش قواه بلند بوده همه قواهی که داعتی ها تا چند سال بیشم تنشون بوده همشون بدون است یه طورم. بود. وزیرم بوده هم بود. لباس منطق ترمه بود مال دهاتیه. ترواز آبی ولی دوخت سرید برم میدوخن باری همون بود یه غبای یخه هم نداشت همجوری این چیز رو بعد هم داشت یا بند داشت و دامن وقتی میخواستن کار کنن این دامن رو میزدن پرشالش کشاوزی هست میخواست بری پشت گاوه هم این،, این دامن غبای که که، این رو بالا این به معنی کمر بستن یا دامان بر کمر زدن اصلا کمر بستن محکوم آماده شدن گرسی علاوه بر این برای جنگ میگه کمرم بست کمرم شاید داشته نویشتی به هر حال معنی مجازی کمر بستن معنی آماده شدن به فر جهاندار بستش میان به گردن برابر گرز گران همه نردیوان و افسون گران برفتن جادو سپاهی که تصریح میکنه فردوسی که جادو بودن دیبا هفزونگر بودن بعد در فارسی چنان که میدونید صفت مصوف مطابقه نمیکنه مرد خوب، مردان خوب نمیگن مردان خوبان صفت مصوف با هم مطابقه نمیکنه ولی گاهی در آثار عدبی به در, در آثار عدبی قدیم مطابقه میکرده برفته همه نردیوان افتونگران یعنی نردیوان افتونگر مطابقه صفت و حسوسه این تا دوره حافظ اینام بوده حافظ میگه که خلاص حافظ از آن زرفت آفدار مباد که بستگان کمنده تو رستگاران راستگار یعنی رستگار. های نر دیوان افسونگران برفتن جادو سفای گران حالا پس اینا هم جادوگر هستن افسون هم سریحن میگه افسون هم دارن دمنده سیندی بهشان شو شد دم همون نفس زدنه و وقتی آدم دادن نفسش تون موقعی هست که غذتناکه و خشناکه او در حال جنگ و به همین دلیل دمان و دمنده به عنی خشوگین به عنی آماده برای جنگ و دعوا هم به کار رسته همون دمیدنه، همون دمه و همون نفسه دمنده سیاه دیوشان پیش رو سر کردن که دیو سیاه دارین و دیو سفید و تو همین کتاب آخرین فرزوسی بنده هر دوی اینا رو بمث کردم و مقاله یعنی در شانمه زید و دیو آمده اینها همه یاد کردم یه مقاله اونجا هست رفقه هایی که علاقه مندن تا وقتی کتاب نیست اون مقاله رو یه نگاهی بشون دمندسیهدی بشن پیش رو همه باستان برکشیدن او او اسم ستوکه حصه وقوق و تهتق و شرشد و زرزه رو نمیدونم که که میدونه که هر هر قومی یه جور اینه مثلا صدای سگ رو عرب تعبیر میکنه به اف اف ما و او او ما میگیم وقوط در زبون فارسی در فرانسه یه فرید داره همون باز تغییر سوچ این اینا هر کدوم به اون تناسابی که این صوت رو میتونستن زبان خودشون باش تحقیق کنند اینایی درست کردن که اینا روشون کنند اسم صوت یه بنده یه وقتی نظریه داده بود که اصلا زبان اول بار از اسم صوت به وجود آمده ولی درست نیست او اسم صوت رو معنی سرسدا و هیاهویی که دیوان کردن جاندار تهمورت با فرین. در زبان فارسی و در بسیار زبانهای دیگه احیانا زبانهای هندو اروپایی وقت که دو کلمه با هم ترکید میشن و حرف آخره اولین کلمه و حرف اول دو کلمه یکیه یکیش هست میشه با آخرین میشه با آخرین دوست میشه دوست داش، این در عادستای یه، هم. این در همین کال، در فصل این آب، بافرین یعنی بافر، جاندار، تعمیر فر بافرین، بیامد کمر بسته ی رزم یک یکو یک مرارا بادی جان، یعنی طبیعی که طی آرستن چون منی آرایش لشکر، یعنی تر سازمان داد جنگ با دیوان این یکایک هم که کلام فیلوسیز خیلی به کار میده معنی خواستی یکایک برارا با دیو جنگ نبود جنگشان را فرافان درنده خیلی طول نکش چرا؟ از ایشان دو بهره به افتون بود در اون این افتون افتون الهی است افتون اهوراهی است و اونا هم که از افسونگری مزارع نکردن، بیوان افسونگران دودند. ولی از عین تمور فهموریس خودشی زیادتر بوده که با هفتون دو بحر از اینا رو چیز میکنه. من نمیدونم که دو بحر از چند بحره؟ شاید، شا... من نمیدونم البته. شاید دو فندومه. بذ نگاه کن، طنگ مهین اگر رفقا یه نگاهی بکن ما اینجا ابزار اینا هیچ ندیدم من در بهتریم نه کتاب دارم نه فرهنگ دارم هیچ تو فرق دانشوند شد بیز نذ باید یاد برون لا کتابی آخر از لا کتابه برون بسم الله کتاب عزم دارم که اینا رو بعداً ببینه که نمیدونم. دو بهره جام می‌شورم توف انجام بشه حالا یا یا دو شیشوم به توار ششتان شایع از دو بهره به افسون سون دیگرشان به گرز گران کرد پس خسته و بسته خار دیگه در اختیارش بودن؟ به جان خواستن دان زمان زینهار زینهار خواستن یعنی امان خواستن زینهار یعنی امان بعد زینهار خواستن داریم و زینهار خواست زینهار دادن داریم که امان دادنه و زینهار خوردن به معنی شکستن قول امانی که بزن در همدلله روش جاری ما بوده در کل تاریخ یه ها قرآن مهم کردیم بسردیم مثلا بابا بایدم کنیم گرسون می کشمش و این مال امروز و دیروز و پیروز نیسته فکر نکنیم مثلا سلسله پلدی یا سلسله خود از قدیم الایام یکی از گور زدن این بوده که قسم های می‌خوردن میخوردن حتی گاهی آدم معترم این قاضی عادل شاهد هم شاید میگرفتن می, می نوشتنم این حفاظ دارم میمیده می خاری و یکی از نشانه های زینهار دادن یکی نشانه‌های های دیگر هم داشته انگوشتره شخص زینهار دادن حافظ میگه که از لحل تو گریابم انگشتری زنهار صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشه انگشتری زنار با یا اون که فرمو رواست انگشتر خود چونیم که این پیش تو باشه به عنوان زنار برحال به جان خواستندان زمان زنهار و از این به جان معلوم میشه که گاهی مثلا به مال زنهار خواستن یا جدیگه هم بوده بودید چسیدان بشن بر خسته و بسته خار به جان خواسندان زمان زینهار که ما را مکوش تا یکی نو هنر بیاموزنیمت شاید بید بیاموزنیمت یعنی بیاموزانیم آموزاندن متعدی آموزش و کلمه هنر دو جز داره جوز اولش جوز دوبانش رو اول بگم برای آسان تره جوز همون نره نر به معنی جنس مذکر به معنی نیرومند و برومند و مردانه و اینا هم هست مثلا میگن پولانچه هست مرد نریه خب همه مردان نره این از اون لحاظ گفته نمیشه یعنی جوان هست و مردانه است و امساله این نرد این معنی که خود کلمه مردی هم به همین تحصیل تعبیر میشه به عنوان برومندی و جوانمردی و بلند که مثلا و حتی زنهایی که مردانگی میشهدن گفتن که زنان ها مرد کردارن اینا یعنی مخصوص جوانمرد قسمت اول این در پهلاوی است رو رو صورت دیگری از کلمه خوب پس رو نره یعنی نیک مردانگی مردانگی نیکو این اصل و این که اخیرن یعنی آرت گرفتن خب گرفتن ای هم نداره اما اشکال اینا این است که اگر آدم روشن نباشه بعد ما میخونه که توی فردوتی که بیا هنر یاد بدیم بعد فکر کنه میخواند بازگزن یادش بده در حالی که نیستی که می‌مین که خط اما هنر یعنی مردانگی و اصلا در در کتاب‌های حماسی آثار حماسی هنر هنر وعنی شداعت و وعنی شمشیزنی و جنگ آوری اینا سیسته دوستی که میگه هنر نزدگی رمیان هست و بست مرادش جنگ آوری که ما رمک تا یکی نوع هنر بیاموزنیم است که آیت ببرم من یه دو کلمه اینجا واجب خط اول بگم و یناس که شاید هیچ از یعنی دو تا از مهمترین اختراعات بشر اولیش زبان اگر زبان نمی بود کسی تجربهشو به دیگری انتقال نمیدتش مثلا ایبونا تجربهشونو خودشون میکنن اگر تجربه‌ای بکنن میرن نمیتونن انتقال بدن باید هر کسی دوباره هستند ولی تجربه 60 تا 70 تا 50 سال زندگی رو یک کسی به خصوص در کارهای پنی و این مسائل برای اینکه متاسفانه نصیحت و تجربه زندگی رو نمیکیدن بچه ها ولی تجربه مربوط به کار و پیشه رو نتیجه یک عمر کار کردن رو در زیادت دو ساعت آدم میتونه به آیندگان تسپره و این چیز زبان منطقه زبان یه زبان از یه مغز میره توی مغز بیرون در عالم خارج نیست یه حرفی تو ذهن شما میره تو ذهن شما این عیبش اینه که گرفتار زنجیر زمان و مکان یعنی کسی که به وسیله شفاهی میخواد مطلبی رو به کسی که انتقال بده باید صداش برفه زبطه صورتی نبود که راژیو اون که نه بود اون تلفون بودیم که نبود مردم بود. باید اولا همز... هم مکان باشه به برد صدا باید با صده داشته باشن همزمان هم باید باشن یعنی لعقل پیری این بخوره به جوونی جوانی هون اگر نمیشه بدیه و اشکال بزرگترش این بود تو گاهی یک بلای عام میامد یه زلزلهی این میراث معنویشون از این میراست اکالی زبان امریز اوژکتی از ذهن بزنید میرون در نمیدونه خط اوژکتی اختراف خط یعنی این که شما میتونید اون در ذهنتون هست بدون اینکه مغزی روبروتون باشه که اینا منتقل کنین به اون از وجود خودتون بریدیم بیرون نتیجه نتیجه اینه که زنجیر زمان و مکان از پش پرشید داریوش داریوش بزرگ یه شیزای رو سنگ نوشته در بیرون. شما الان میتونید اونو بگیرید و بخونید و بخونید یعنی این فاصله زمانی و مکانی به کلی برشید خط اهمیت بوقولدش همینه اولین و مهمترین اختراع بشر اختراع زبونه به این دلیل که اصلا زبون بشر رو بشر کرد خط هم اختراع بزرگش یعنی امتیاز بزرگش اینه که بشر بشر ماغذ تاریخ رو تبدیل کرد به بشر تاریخی اصلا تاریخ یعنی چی؟ از روزی که ما نوشته دراست. ایشا چون که ایشون خبر ندید. اگر هم سینو ببینین چه نقش شده، اگر اینو نвестی توی روسی فردوسی در مدح شاهنامه اش میگه یکی نامه دیدم فر از حسن افسندیده از دفتر راستان، پسانه کهن بود و منصور بود، تبایع به پیوند او دور بود، گذشته و روز سالیان 2000 گردیدون که برتر نهایت شما. دو سال کتاب دو هزار سال قدیم که نداشته فردوسی دستش که روایت هماره دو سال بوده ولی نوشته شده بوده این از که ممکنه بسیاری مطالب از دورانهای ما قبل تاریخ به دست ما برسید همچنین ممکنه بعضی چیز ما رو در کارهای تحقیقات ما قبل تاریخی کمک بکنه از قبیل گورها، از قبیل عبدارها، از قبیل کارهایی که کشپیت که باستان شناسان و مردم شناسان رو اینا میکنن اینا یه مقاری زیادی نتیجه میده ولی تاریخ از روزی شروع شده که بشر تونسته بنید حالا این نوشتن اولش بسیار ساده بوده حسابه که گوستفند عکل گوستفنده میتوشد که خونه تصویر خونه میتوشد این نوشتی که یعنی پندر نگاری نگاشتن فکر حالا این یه مشکلاتی داشته اولش این که اسم معنی رو چجوری بنویسن گوزفر می بنویسن، خونه رو هم ولی محبت چی بنویسن روحالفتن چی بنویسن اینا هم یه راه هایی براش کردن که مثلا فرض کنید به عنوان سمبول محبت قاضی یه مادری که بچه در آغوش داره دیگه هیچ تردید نیست هیچ مادری تو دنیا نیست که بچهش نیست نیست یا مثلا دو تا پاک یکی جلوهی که عقب وقتی این نقشش نشونه این که داری را بس... ولی به هر حال باید بسیار مشکلات داشت و این علامت ها تعدادش هرقد زبون پیش یعنی هرقد ذهن بشر پیش رفت بیکرد تعدادی علامتو زیادتر پیش کرد و بعد سعی کردن این علامت رو خلاصه کنن حالا لازم نیست اگر خونری روی بکشید بکشی توشم لوستم که آویزونه بکشی و هنجرشم هم های چهار قسمته بکشی چیزی بکشید که شمای خونه چیزی که نشون بده این خونه هست کافیه این است که کم کم یه علامت ها خلاصه شد به صورت علامت های میخی خط میخی ایدئوگرام خط میخی غیر علف بایی. خط مردم بابل و آشور قط میخیر غیر علف علامت به کتابی خوندم راجب تمدن بابل نام یه که کسی برای این که یه کتابت خیلی ابتدایی خیلی مختصری به دن سیاره سال باید بره کتک به از اون معلم فقط برای خوندن نوشتن مسائل جاری روزان تازه یه مثال زیادی لوحه از باویل آشور هست هم. که همین مسایل دتماد دردن رو بشید صورت حساب و صورت سیاسه بود ممنوب باز غلطه با تمامیدن برای اینکه اون بچه باید مثلا دوزار تا علامت رو که اخلافات خیلی جزنی با هم داشتن ما رو به زنش بسکن و این خیلی کار دوشوالی یه روزیز مصری هم صورت دیگری زد از همین ایدوگرام اونجا هنوز تصدیره چشم و بوش که لا یه اختراع مهم دیگه اختراع سوم رسیار مهم دیگه پیدا شد که این دو اختراع رو تکمیل کرد اختراع سوم اختراع علیف برای اولین بار چینیقی که قوم تجارت پیشه بود و ناچار بودن بریانه ورز هم بودن می تا سواهل چین و می اومدن و گفتن که بعضی کشتگیشون تا حود امریکا هم همون وقتا و حال کار نداریم مالا به اون می رفتن تا سفرهای دورده هست اینا معامله باید بکنن و باید ما ریاد کنن از خلقی که زبونشون هم بردن با برای اولین بار متوجه شدن که دروسته که یه زبون 10000 کلمه داره، آلی به هزارتا صدا نداره اگه به مثال خیلی محسوس بزنیم شما صد هزارتا امارت و اشکال مختلف در عمرتون دیدیم هزاران هزار امارت و مختلف ولی مثاله ساختمانی که اینا رو درست کرده چند است چه؟ تا دل همه اون مثاله در همه این خونه ها به سر نمیره که اونجایی که چوب زیاده اینسای امریکا خونه محش اینه مثلی به اصلیش چوبه اونجایی که سنگ زیاده داره سنگه الاخه فینیری ها پرای اول مار متوجهشتن که دستگاهی که صدا تولید می کنه خیلی دستگاهی کچیکی یعنی از این هنجره از از از نای هست تا لب این هی دستگاه کنید بس صداهایی که از این دستگاه میتونه بیرون بیاد محدوده یه مقدار صدا هست از بیخ حال مثل ا ا ا اونجا ا همونجاست باقی دستگاه کاری میرسه باید به لب مثل ب مثل پ و ترکیباتو بساطیان ولی کل قصودیم فکر کردن که آما چرا برای هر کلمه یا علامت درست بینیم کلمه رو میبینیم از چند تا صوت تشکیل شده برای هر صوت یه علامت تردید نتیجه این که هزار علامت تبدیل شد به چلتا هر <تصفيق> افبای فارسی باستان، هر پای میخی زبانی که در دوره هخامانشی زبان رسمی بود. ما نمیدونیم تازه نامه هم که می نوشتن به همین خطی می نوشتن یا نه ولی کتیبه هم این خط این هم نامه نوشته از دوره خانش ندیش این که نمی دونیم خط بوده یا نه. ولی این که هست خط علف بایی البته نه علف مثل مال ما در حقیقت دیلابیش هجایی، برای این که اینا مثلا به رو نمیتونستم به بدون حرکت تصبر کنم زیستم به یا به یا بو یه دونه این رو دوتاش میداشت یعنی یه سیلاح میداشت درجه چل تا علامت در رویان ها چلی دوتا که خط میخی فارسی واسطان تشکیل میده و اولین خط میخی که خوانده شد و بعد به کمک او توانستن سایر خطوطمیخی رو هم بخونن خطمیخی فارسی باستان بود به, دل... به دلیل سادگیش با تمام این اعمال ارز که با همه این سادگی که این داره خونده شدن این خط شرحش دیه داستان پلیسی بیشتر شو هست ارز کنم که این رو اولا این خط یا نه دوبامی که نمیدونستن از راست به چپ از چپ به راست از بالا به پایین از پایین به بالا. با درایو استتون که چند دفعه نه که رفتن قالب گیری بکنن از روز بیفتن و میافتن خودشون رو راه رسیدن اونجا نیست تو بحث و اینا تاثیرا حالا البته مساله که این تکیبه عظیم رو که 5 ستون نه از 4 چهار. بعد یه زبون باست باست. بعد بابلی و آرامی هم هست. یعنی به سه زبون نوشته شد این رو باید قالب گچی بگیرن اونجا بسیار کار دشواری بود به خصوص که هموطنان عزیزی ما وقتی اون عادت که عرض کردن که آثار گذشت و عزیزیزی دارن دوستان اشایر اینات سیرند زیاد میکردن شیده شما نشمگیری کردن. یه مثالی هزن داغ میکردن برای خب بر این خالب گرسن اشتا مورو خب حالا اولین بار این به هر حال آمد گذاشتنش اینجا که بیشی نمی خب باید حالا چشی بخونن کجا <متصفح> رو که یه چند تا از این علامت ها که میاد یه میخ کج اونجوری تکرار میشه فکر کردن این مرز جدا کردن یه کلمات از کلمه هم بنابراین تونستم کلمات رو هم از هم دید حالا مفهوم خلاصه این کتیبه ها این نقل معنیش نه ترجم دقیقش در آثار هیرودوت و همسالینا بود مثلا هیرودوت نروشه بود که ولی بله داریوش بوده مثلا و داریوش این کرده، این رو کرده دارم این کتیبه ای نوشته تو این کتیبه این حرفا رو زده ولی این هرما کرده، این رو کرده، ولی اینا مضمون این کتیبه ها رو یک کوهی به مویی به طور تقریبی میدونستن آمدن و فکر کردن که این کلینه به اول هر پاراگرافی تکران میشه بعد داریوش این داره اسمیه دار داره یه ر داره یه وش داریم اینجا البته در چیز یک خورده راستاری در فارسی مثلا داره ی ووش یعنی کلمه است داره ی و حالا درطر در اگه یونیستاریو از همینه داره ی و در حالت فاعلی میشه داره ی وش عالیه بفرمایید نگه داشتن این بحث این اینو بعد آقایی بوده به نام رالدینسون این اصلا نظامی بوده این نظامی خودیم این قالب گیری و این بدبختی سال رو میکنه سال های سال میشه روی این جوم میکنه تو. ارودوتو میมา این ما اینو میتونه ده تا از این ها رو کش می منتشر میکنه من این خواهد توش برکنه. این کار اینا اینها رو آقای دیگر آلمانی به نام اوتوگروتوفند اونم دنبال این کار بوده البته این غالقه هم عکسش منچه شده بود دیگه در دست همه بود کار میکرده رو این بعد از سالها کار کردن من برم یه داریم مقاله و یه مقداری از اون چیزای رالینسون رو نخت میکنه میگه اشتباه کردی در اینجا یه چند تشم خورش پیدا میکنه مثلا شیش دیگه، هش دیگه اون وقت درست مثل معادلاتی که مثلا دوسرا مجبور داره یه مجبورش که پیدا کردی میذاری تو معادله اون مجبوره دیگه هست پیده میکنی اینا کم کم, کم خونده شد به زیادگری بزرگترین شمی و, و رالینسون بودن. و بعد روش خوانده شد دستور زبانش نوشته شد از پنج تا مطلبش تهیه شد دلیلش هم این بود که فارسی باستان 600 کلمه غیر مکرر داره زبان بسیار دشواری هم هست حالا بحث ما اون نیست ولی دشوارترین زبانهای دنیا تاونش که ما در دستور این سه تا تکسطیقه اوستایی یکی فارسی باستان و اگر شنیدین که گرامر آلمانی و گرامر روسی سخته گرمه روسی و آلمانی پیش پیش پارتی باستان عوسته است گرمهر نیست اف هشت حالت در آخرش هم تغییر هشت حالت بگذاریم از این کار حال توجه که این 600 کلمه غیر مکرر داره، عوسته که در دست داریم در حدود یک هزار کلمه ولی در سانسکریت لا تو عدوالا توحسا آثار داریم زیاد بعد نه تنها دستور زبان رو نوشتن داریم مونده دستور زبان که یک چی معانی و بیان و عروض و صنایه لحظی و نه تمام اینا ها رسال در نوشتن در دست من یه بار گفتم که این سرزمین بلاکش ما خیلی بدبختی ها داشته هند آقا جز همون یه چار تا قدمی که محمود تا دهلی اونجا رفت یه بارو یه قراردادی کرد، برگشت، دست نخورده نشد. تو ما مونده. ما که تا دوره قاجار رويشتن فقط اسمش بود. حت شده دست. این دیوار چینه این گندگی 3000 سال 400 سال دست نخورد. است. این جایی که دائما محل تاخت و تاس و راهس اومده و این گرفتاریه نوشته همین فضلانون ایران بوده که شهر و غرب می و و نتیجهش بلاری بود که حسومات داشته آخریهاش هم همین جنگ دوم هم جهان و هر حال که چون تمام مواد سنسکرید در دست و بنابراین تحصیل سنسکرید هیچی اشکال نداشت. و اینا زبان عوستایی و زبان فارسی وستان و زبان سنسکرید مثل ستا خواهر بسیار بسیار شبیه با اختلافات بسیار جزئی این بود که توانستند ها پیش از فارسی باستان رو چیز اوستایی رو درست کردن و کارش کردن و خود اوستا رو چاپ کردن و بازم چند تا از بزرگان بیشتر آلمانی اوستا رو تفسیر کردن، و چاپ کردن و درست کردن بعد هم فارسی باستانو شروع کردن و گرامرش رو نوشتن همین کارش تمام کارش کردن و حاضر در حال این دشیفره کردن مثل خوندن اینا کارهای خیلی بامازه است و یک مقاله در مجله یقما هست و همین کیفیت خوندشتن خط فارسی واسه پارسی واسه هم خط علف بایی که و بعد به یاری او توانستن خطای بابلی و آرامی رو هم که علف بایی داره بخوندن و خوندن و از اونها کردن در وردن حالا با این حال هنوز زبونهایی هست که نه تونستن بخونم حتی نمیدونم زبون هستن یه شهر باستانی در هند در پاکستان تجی، در ایالت سنت یه تندان باستانی که هست شده مهنجدارو اگه اسمش شنده باشیم در کنار رو خونه سند تندان خیلی عظیم اینا آجور بند نظامی های ما اخته داشتن کاری داشتن آجور به اون صورت با. باید خیافونی که آجر چه کامله یه چیزهایی اصلا عجیب قریبی یک نقصهایی هم اونجا هست که نمیدونم خطه یا نیست باید هم موفق به شیفت کردنش هم و الان هنوز فنلاندی ها از اون مفت که من مهمور رو در پاکستان این دیدم گفتم فنلاندی ها رو این کار کار میکنن هنوز هم و در این واقع منتشه هم اصلاً هم که این مسئله خط بعد الف باج پیدا شد اون تعلیم 14 15 ساله تبدیل شد یه تعلیم چند ماهه و با این متد جدید که الان میدونید که در در ایران که یار میگن خطش بده، الف باشه بده الف بد نیست هیچ فش بد نیست حتما از مال انگلیسی بهتره برای اینکه گفتن که برناچوم منابعی زیادی پول وقت کرده برای اصلاح خط انگلیسی خب انگلیسی های تبا طبع تبایی که خودشون انگلیسی به دنیا آمده بودن رفتم گفتم قربان اینکه سخت نیست که خب این خواست ما عب نداره که نداره گفتم نم برداشت نوشت جی ایچ او تی آی گفت بخون گفتم خب این قادصا میشه گو تی گفت نخیر این میشه پیش چی آف پیش بله جی ایچ صدای فه میده مثل در راف و ایناف او هم صدای ای میده مثل در کلمه ویمن تی های هم صدای شی میده در تمام کلماتی از لاکنه های شی نزید چه پیشه که این گرفتاری ها هست تا این حدقه میگن که, که دوتا انگزیسی به هم برسن اگه ازشونو بگن یارو میگه چجور مینویسن اگر هم ازشونو بنویسن میگه چجور میخونن <تصفيق> و اینکه حقیقتی که من مثلا می رفتن توی من انگلیز که بودن تو مراز آجانس مثلا موزن جایی که کار بسنفه نه بینیز بگیره من این ساله که با تلفن وقتی می خواهدن که می گفت بعد دونه دونه اسپل می کردی از بای نم فلان توی که که که می گفت بایده طرف این هست که ما الان بچه هر بچهی که می به دوستان در ظرف چهار ماه اگر از نظر عقب مونده نباشه و طویب تصدیق نکنه که این بچه عقب افتاده است یعنی انفش مثل انچان عیب داره چهار ماه درست میکنه سواد فیده میکنه. حالا یکی سواد خوبتر فیده میکنه که بعدتر اون بستگی کوشش خودش داره اون رفتی اون کار نداره که اینکه ما رفتیم سالها در هیچی میچینیم ارد <تصال> کنم که خلاصه مسئله خط مسئله تیدا شده دوران تاریخی و مسئله الاسوا مسئله در حقیقت همه گیر شدن خط و تعلیم تاریخ کما که مثلا این کامپیتر هم واقعا یک قدم تازه تریست در این باب برای اینکه اون که شاید شما ما احیانم ندونین معنوم ده خدا ما دونه مشکه هستید ده خدا سال 1934 مردی یعنی 1936 ساله مردی ده خدا در اصلاح صغیر فرار کرده اروپا میخواست روزنامه سور اصلاح فیلو خبر پیدا کردن که در ده پوره ای هستش توی نام ایوردون منجرد طور بده کن، در ای وردون سویسی چاپونه هست یه گارس هم رو پارسی که باید هروپ چی ندارستم، فهرنگی که علیک برسه نمیشته، یه چی چی چی چی به خدا بلند شده رفته خودش اونجا سکونت کن ندارم گوشنه و تشنه و بطبخت و نوم شب مستلو بعد خودش میرهده این هره میچیده طبیعیه اس کی وقتی خدا باید نیکنه، رو خود حروف چینی کاری که یه حروفین در ذات نیم ساعت میکنه، اون باید 8 ساعت وقت داشته باشه من تو ندونه وارد پیدا که به اول کجاست یه وقت کجاست بعد اینا رو درست نمی‌کرده حظ بدبختیی بوده. اون بعد نمونه‌اشو می‌فرستاد مثلا پاریس میزباناتان قزینه اینو اون بخونه من غلط‌گیری کنم درست میکنه، واسه یه چنین بدبختی دو سه شماره سوره استفین درمیاد الان این خاوران و ست نصفی آدم اینجا هستن، ازم کارهای خودشونو میکنن. اوقات فراغتشون رو اوقات فراغتشون رو بهترین چاپ بهترین صفحه بندی، بهترین تعتیبات، هر چه میخوان آماده. یه دونه از این جوایز کامپیوترم کار یه شعبه اروپین رو میکنه. فارسی و لاتین است که این یک قدم تازه‌تریست، یک قدم بزرگ‌تریست در همین را برداشت و هر حال، اینا رو پاسم بگم که ارسانم گذاشم همه بدیم که میگه که که ما رو مکشتایی که نوع هنر بیا موزنیم به بر به برم آمد دیگه که نه خیلی نه خیلی نه خیلی اون رفتی نداریم چشم حضر می کنیم نه خیلی اون دیف, دیف که حلیس کردن با دیو و خدا و یعنی حرفای اعتباط که قبلا نه کرده بودن نه اون میگم حالا برشتون اون ریشتش میگم برای که ما را که نقونر بیاموزن میاند که آید ببر که نامبر دادشم یعنی که تا نهانی کنند آشکار نهانی رو آشکار کردن چگاه کردن؟ چو آزادشان شد تر از منده اوی ناچار پیبنده اوی نبشتن به خسرو یا موختن دلش را چه خورشید بفروختن این بفروختن از عبرختن این از عب فروختن یعنی روشن فروخت. دلش را چه خورشید بطر بودن پیداست که از همون قدیم که این آثار اساسیرین گفته میشه به اهمیت فوق العاده خط سی برده بودن یه تعمورست وقتی یاد گرفت دلش مثل خورشید روزندش. شد نوشته یکی نه این نوشته مفصول خط چه نزدیک سی چه رومی و چه تازی و پارسی چه سقوی و چینی و چه پهلبی نگاریدن آن کجا بشندی؟ آن که نگاریدن آن چیزایی که شنیدی که چند رو خطه همه شی میگید همه یکی از مخاطر مهم این است که آریایی که آمده بودن در, در ایران اینا سطح تهدانشون از تهدان افراد محلی پایین تر از جمله خرف بلد نبودن و نوشتن و خوندن رو از اینا آموختن و این درست همیشه قوم مهاجم معمولا قوم سهراغرد و بیابانگرد است و قوم اینست که از هنگی و سختی بیابان پناه میاره به رفاه و نعمت شهرنشینی این از نظر سختی زندگی سطح زندگیش پایین دیگه به خصوص نظر فرهنگی همه الان اشایر مثلا انظر فرهنگی زندگیشون با مردم شهری طرف نستر می کنش این این همین وضع بوده هم. این هست که آمدن، قلبه کردن، در دورهای بعدم هم این همین اتفاق افتاده مغوله وقتی آمدن سلجوقیا وقتی آمدن ترکمانه سلجوقی محسلون هم بودن آمدن میگه که توقریل خط راحت و صدور نوشته نمیشه اون یعنی توقریل ثواد نداشته وقتی فرمانه رو میوردن توقی کنه یعنی امزاک کنه کشید کنن میگه توقیه او چنین بود یه علاواتی کشیده علامه تاری کشته نرسه توقیه او چنین بود بر شکل تواقی یه <تصفيق> شکلی چوان بالا این امزای شام یعنی فرمون لازم را داری جام شد توقیه دو صدوقی وقتی آمد جده البست فلان و ملک شاهیجه از سواحل مدیترانه تا مرز سیم اون جهان که ملکتشون بود جدشون هم جاده ما قلام اینا که آمدن دیگه بستن ولی آمدن بعد چیز شدن دیگه شاهزاده تیموری بایسانگور یکی از بزرگترین هنردوستان و هنرشناسان و هنرمندان دنیا اصاب شدید فیلت باید اینست که عین همین وقت یعنی همین چیز که ما شاهد سحنه هایی که در دوره برزیزم شاهدش بودیم اون فصل و کافی که در تاریخ بخونیم که روشن بشیم عین همین سحنه ها در تو بوزگار هم استفاق بزیدیم ه نوشتن به خسروبی ها موختن درشت ها چه خوشی نوشته یکی نه چه نزدیک سی چه رومی یو چه تازی و پارسی چه صغبی یو چینی یو چه پهلدی نگاریدن آن کجا بشنه جهاندار سی سال از این بیشتر چگونه چند جور برونا این چگونه غیر از چه گونه چگونه چیزها این چه چه استخام نیست چه گونه یعنی چند گونه اونجا سی سال از این بیشتر چه گونه برون آوری بیمونه قدر که پیدا کردن خیلی جداره پیدا کردن دیگه بلکه همه اون آثاری که مختوط بود و نوشته بود میتونستن بخونن و بعدش افتفاده کن میگه دورانش هم سی سال بود باز دو آخر بر اون همون احساسات ارفانی فردوسی باز یادش نمیره که بگه این با همه این قدرت و با همه این دیفندی و با همه اون افسون الهی و با همه اون فرگی زدی و با همه این منعرهای که به دستا برد برفت و سرامت او بودگاه همه رنج و مند از او در مجله یغمای یه مش را که خوفی نویسا یعنی سخنچین های دوری ناسه می شود و اینا به چرگانی می دزن یه و اینا رو چاپ می شود اینا راپورد بالاش می نوشت به مردم این ده به تحکیده یعنی حسن نمی مونه به مردم از بد و, و از بد و نیک داختان ما می گه برفت همه رنج او مند از اوی آگه دار ما درود درودن وعنی درو کردن درویدن یا درودن درو کردن جهانا ما پرورد چو درود چومی بد روید. پروریدن چه سو؟ بله؟ یا رو بابا گاف داره، یا مرخ داره اینا رو نازشون میکنه اون میاره و علف مقبی جلوشون میرزه و تغییه ی فست و اینا نمیذاره اصلا تکون بخورن گافه میشه قدیه یه هجده ها جاشت نمیذاره حریکت بعد که گوشتش پیدید بعد خوب درست شد بعدش میبرن اونجا بر اینه که این کار دنیا همینه اینا خب بعدش داستانو جمشیده که حالا دیگه داره من مولت بدین شاید حق بود که من اول از اول اصلا این توضیح رو میردم بلی الان این توضیح رو میدن خدمتون که بعدی هیست همون جوش که به ذهن خود شما میرسه که اولی که زبون درست شده خیلی پنجا تا بیستی تا لغت تا لغت عادی مربوط به زندگی اون جماعت خیلی محدودی بوده به همین حالا هم مثلا اگر تو داستانهای جگلندن بخونید این جزایری که بومی های اونجاها نشدته بودن ازشون حرف میزنه اینا رو مطرح میکنه میگه مثلا یه روز سیاه بود سیاه بومی اون جزیره که این تا پنج بیشتر ولد نبود سلفله عدد بعد وقتی میخواست بگه 6 میگه پنج تا و یکی تا هفت تا تا تا تا می تا بعد این سلسله به این ترتیب دیگه ای از دیس بالاتر نمی رسید که 20 تا انگشت دست و پشت هم و یه چیزایی هست لحجه های همین محلی که جرگون بهش میگن به فرانسه. این همینه زبوناییست که چند تای معدودی لغت داره و ساختمونو سهل خیلی ابتداییست خیلی خیلی بدوی و الان هم اگر یه وقت توجه کرده باشین جماعت عوام و ناسی که مثلا میان در اینجا سال میمونه مثلا 20 سال میمونه ولی انگلیسی که یاد میگیره یه چیز شکست وزده است. بهداخره مقاصدشو حاصل می ولی پر قلطه و یه جوری بلخواهی این حاصلش. این طبعا اول زبان اولی که اختراع شده همی بوده بدون شک هم مسئله اینه که ما قدیمترین این اشکال این صورت ما تهمیشید چطوره که قدیمترین زبنهایی که ما داریم از همین چیز چیزتره جوابش است که ما همیشه وقتی میریم سر کلاس به خصوصی زبان دیگه ای رو میخوام یاد بگیریم خط و زبان در آن واحد به ما یاد میدن ما تصبر میکنیم که این دو دوتا یکیه گاهی حتی بعضی ها میخواد بگه زبان انگلیسی میگه خط انگلیسی یا میگه خط میخواد بگه خط انگلیسی میگه زبان این مفهوم در ذهن ما اما در عالم واقع زبان از اختراحش ح حد اقل حدی که میزنمصد 120 هزار شده. حد اکثرش حدود یک میلیون سال و علت هم این اثر مکتوبی که وجود نداشته فقط باید حدس بزنم و این حدس این ترتیبه که از روی جمع جامعه اشخاص، اندازه می گیرن مردم شناسا و اینا تشخیص که در چه مرحله ای از تفامل مغز زبان رفت و از این راهای های می که عرض کردم. بین بین صد ویسد و, و سال بود بعد وقتی من در فنانسو بودم در حدود دهه 80. گفتن که یک جسدی یک سکلیتی در یکی از خواهرهای ستریز پیده شد که میدونید که اوترخون و خیلی آسان میشه تارش رسید کرد کربون 14 کربون رادیوکیب میشه تایین کرد مال چه سالی و یه جمجمعی پیده شد اوترسکلیتی پیده شد در یک خواهری که این کرده ماله یه ملیون سال پیش بوده و محفظه مغزش به قدری بوده که فکر میکردن که این باید بشر سفنگو باشی و در اینچه کار رو میبود و این زیادی عقب ده. حالا ما اصلا اون کار اصلا کار نداریم کمترینش که صدیزار ساله میگیریم صدیزار سال بشر زبون کرده فقط شیزار سال تاریخ دارد معنی این حرف اینه که فکر کنید که یه آدم صد ساله ای شیش سال آخر عمرش رو یاد داشت ازش به جا گذاشت باشه اون 6 سال آخر هم سهار سال اولش یاد داشته همش چند صفحه بیشتر نباشیم و سال ما قبل آخرش هم مثلا یه دونه کتاب باشه اون آخرین سال اون بهش که میشه هزاره ما از قرن دهان تا قرن 20 یه مقداری مطلب ده و ایلا اون چه میراثی که کل میراثی که به دست نمارسی جز مثلا دو هزه ها تر پیش یا که همهشت جز کتار زیادن بنابراین زبون ما نمیدونیم که چه سیلی کرده کجا ها کجاها کجا مهاجرت کردن کدون زبون از کجا به کجا رفته کدوم قصه از کجا به کجا این خبر نداریم. گاهی با یه قراین دیگری قید از خط با قراین مردم شناسی یه حدسایی و در هر صورت احتمالا زبان نود و چارپنگ هزار سال وقت داشته برای تکاملش از اون جارگون بیس لغتی یه بسیار ساده هی بتر شد و بتر شده و بتر شده و این تکامل رو در این دیدن که هی گرمه رو پیچیده تر کنن در زبون عربی چون زندگیشون یکی از ارکان زندگیشون شطره شاید ست لغت برای شطور شطور سرخموی زاق چشم شطور یک ساله شطور دو ساله شطور اون فلان بنت مخاز بنت لبون ان سامین و با نرش مادهش رو دا هر کنون مثل. خب وقتی کسی میخواد بیکن شطورم سهارشم رفتم هیچ لزومی نداره که بگی که چیز طور صرخموی، زاق، چشم، ماده یک سلام تا باشنم، هفتم که اون مساهل اونجا مهتر نیست، این رفت اگر احتیاجی هم بود، میگه خب شده شطر بود قبلن، قرض کردم، اسم هشته حالات داره تغییر میکرده آخرش برای اینکه بخواهمم که حالات نومیناتیب، اینا چهار حالاتش که در های اروپایی هم هست الان در زبون فارسی هم هست. حالت نومیناتیب که حالت فائلیه حالت اکیوزتیب که حالت مفعولیه مفعول سریح که بار را میاد حالت کنم که جنیتیب که حالت اضافه است و حالت ندا اینو اما در فارسی هم از حالت بیشتر نداره فائلی، مسئولی، ندا، اضافه در آلمانی 6 حالت بره و روسی از در فارسی باستان هشت حالت بره شوارتش همین است. یعنی فعلی نامیتیف، مفعولی اکیدتیف، ندا، وکاتیف، اضافه جنتیف، بعد داتیف، اپلاتیف، اینسترومنتال و لکاتیف. لکاتیف یعنی حالت مفعولی. اون که با در میاد. اینسترومنتال از instrumented معنی به وسیله مفعولی که وسیله میاد مفعول و به اپلاسیس مفعولی که با از میاد در عربیش میگن مفعول و نه و باقی دیگه اینا هر کدوم آخرهای اس تغییر میکنه بنابراین زبان سیری که در راه تکامل پیموده اول از منتهای های سادگی شروع کرد یه منحنی رفته بالا رسیده به جه پیچیدگی و مشکلیش این در زبانهای باستان از اونجا سرازی شد یعنی توجه کردن که اون چه باید در زبان گسترش پیدا کنه وکابیلره واجگانه لغت زیادتر باید بشه بشه نگرمه دوست باستان واقعا احتیاجی نیست به این که آخر اسم تغییر بدید تا بفعنید که این فاعله یا مفهوله یا خد شد مالذو میکنیم بنابراین این زبان بعد چون در خود در خود ایران ما نمیدونیم که در دوره هرخانیشی به چه زبانی مردم حرف میزدن خبر ندیم احتمالا زبون ساده تری بوده ما اون زبون رسمی بوده که مینوشتن به هاش حالا به هر حال علت اینکه هفت هم میزنیم اینه هرخانیشیان چنان که میدونین به وسیله اسکندر منقرض شدن که میدونین اسکندر که زندگیش طولی نکشید مورثود جانشینانش هم یعنی <تصفح> سلوکیت‌ها مدتی کمتر از 100 سال با خود اسکندر خود اسکندر و بامیه یونانیا دوران تسلطشون بر ایران کمتر از 100 سال 90 هاشان درست بعدش اشکانیان اومدن رو, رو کار اشکانیان به زبان اردو دادن که بشونیم پهلوی اشکانی ازش آشنایی داریم ساستانیاندن با هم ساسانیان اومدن بازم زبونی از دن که بشیم پلاوی ساسانی اونم حت ندی داریم زبون پلوی اشپانی و پروی ساسانی از نظر سادگی گرامر در حدود زبون فارسی پیدا این ت غیر ممکن در ضد ساعت سال اتفاق بود یه ای از زبان اخ سیرش فرهنگسن که نداشته اون وقتی رادیو تلویزیون مردم خودشون باید خور خود این خیلی طول میکششته که پیداست این زبان باستانی مال روزگار خیلی قدیمتری بوده بعد در دوره خانجنا زبان ها ساده تر شده مون ما چیزی از اون نوشته های اون روز توی نام ها و مای تو وگ داشت و در دست نداریم 100 سال بعدش داریم زبانی که آسمون بوده از دشواری اومده زمین در حد فارسی امروز خودمون تقریبا میدونید که زبانای مثل مثل انگلیسی ها تا انگستان ایرانگرامز نداریم. فارسی تقریباً گرمه نداره یعنی خیلی خیلی گرمه ساده بسیار بسیار ساده چیز آلمانی و روسی اینا هم یواش یواش مثلا فرسانه در عربی سیغه مفرد داره تصنیه داره جمع هم داره برای یکی برای دوتا برای تا در فارسی باستان مفرد تصنیه جمع داره. بعد مذاکر محننس داره میشه برای هر شخصی میشه شیشت اول شخص اول شخص تا یعنی دوتاست دو بوم شخص، تر شخص، هرگون داره سیده دارم میشه دوازده متکلم یعنی اول شخص، یه مفرد داره جمع، چهارده عربی، چهارده در پارسی، در انگلیسی، در فرمسین شیست سیده بیشتر نداره سه شخص، یه مفرد داره یه جمع، و بعد مذکر محننس هم دیدن که احتیاجی نیست هستن جایی که احتیاج باشه، خب حال بید. حالا، محصله مزاکر محننس هم یه گرفتاری بزرگ داری اون اینه که یه چیزای هست که حقیقتاً مزاکری مثل مرد، مثل عیون نرخ که اسماش هم فرمزانه هم هست بعد از مرد ماکیانه یا گاو و اینا هم جزکی، اسمش فرمزانه ولی یه چیزه هست که مذاکره همانست نداره میز و صندلی که مذاکره همانست نداره برای رفع این اشکال دو رفعش دازدود داره یکی اینه که به طور قراردادی بیان بعضی از اینها رو مذکر بگن بعضی رو محننست بگن آقا کتاب مذاکره میز محننست همجورم بچه ها یاد بگیرن در سنسید. در سنسید. ما محنس خورشید مذکر در عربی خورشید محنس ماه مذکر و این قرار دادی اینا رو میشونم گرم مجازی مذکر محنس مجازی یا باید چون نمیشه که نصفی مذکر محنس داشته باشه نصفی نداشته باشه که یکی از این ها چیزش باشه نمیشه یکی از ناد یعنی یه قسمت از زبون مذکر و مؤنث داشته باشه یه قسمت مالحشته باشه که بنابراین یا باید هر رو مذکر و مؤنث درستن مثل عربی و فرانسه یا واسه سه تا بکنن مذکر مؤنث و خونسا مثل آلمانی در بله. وقت برای هر فرارش اینا حالات مختلف مفعول که میاد فاعل که میاد غیر که هم روش میاد صفت که میاد اینا آخرش تغییر کنه چه فرقی یعنی اسم شایی کامل بودن میذاری؟ کامل نیست یه مقدار یادی چیزای اصباب در سر الان در عربی تقریباً دیگه سیغه تصمیه به کار نمیده هیچ و جابونای عرب می خوب حرف میزنن زنن، می نویسن، مقاله می نویسن. زیر زبر آخر کلمه رو بلد می شن که کله، اصلا معنی جمله در عربی با به اعراب آخرشه اگه بگی از زیدون امرن یعنی زید امرو زد اگه بگی از زیدن امرون یعنی زید امرو زد امرو زید رو زد برمسانه به کلی بلد میگه بگی از زید امر فرشت نمی بلد نیست درست بگی من یادم این یا خوزستانی در عرب زبون ناصره متراقی متراقی طهران مترق چه جای ان بهش گفتم بلندم هستم تو ما شاء مشالله بهش گفتم سید متراقی متراقی یعنی خوب دستی که <سان> این عرب زبون عرب عربی عادت عرب میزنه می میخونه مقاله می نیفته. بعد آقای رائید که اصلا مال اهل بعد بعدم زبون فراگیرش هم که فارسیه چنان عربی یاد گرفته که وقتی سفیر بوده در عربستان سعودی فادشا که ما سهرد بزنه تناکس که ازش ملاحظه دشته این فراهد و نوت خوبی هسته میگفته این شما قبلا تایید نگاه کنیم که ایبوی راید نشه بعد میگفتش آها این چیز راحت به این ناصر مطرقلی میگفتش که این سرف چه گناهی کردن که شما اینجور میزنید این دست پاشونو میشته دستورات و بعد ساده می کنند. بنابراین من خیال نمیکنم که پیچی دیگه زبون در یه دوره نشون کمالش بود در همون دورهی که زبونهای باستانی ازش به یادی بود بعدها متوجهتا نسخ در سره و گرامه رو ساده کردن منطقه مفاهیم رو واژگان رو بستهل بدن این مسئله بود که ایشون سوال کردن فکر کردم که ای باستانم احیانا می دارد ترام بخوره این هست که حالتی و اما حالا می رسیم به سر پادشاهی بزرگترین پادشاه از آتیری که جمشید باشید فاجه به جمشید علاوه اینکه این محض میخونیم خونیم یه مردار داستان هم در عوستا هست و شرح اون داستان هم در مطبع پهلوی هست این مرداری که اینا در شاهنامه تردوستی نی آمده و بنابراین اگر اون در شاهنامه آمده فقط ما بخونیم بیش از نیمی است در گذاشت جمچید نمتیم باقیش نمتیم این از که من سعی می کنم اون باقیشم برای تون بگه اولیش این هست که از که جمچید از پاتحانه بسیار قدیمی ایرانه و چون اسمش هم در ویدا هست و هم در عوستا این نشونه اینه که دوران او دورانی بوده قبل از وقتی که قوم ایرانی از قوم هندی جدا شده این یک در اوستایی به نظرم است یما اونجا از یما یا بالعکس من سعادت اردستانی خوب می خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما مرحوم خوزافرد هر دفعه می تو اتام میگفت بروید از اهل ریشه بپرسید <تصفح> آ خب البته شاگرد اهل ریشه نیستن ولی یما یا ییما در اوستایی هست در اون یکی هم هست یما جم یاما یعنی دوغلو معنی لغوی جم شیده شده شده است یعنی دوغلو بار ودا آمده است که جم با یک دختر دوغلو از مادرش زاییده شد به همین دلیلم اسمش هم جم الان در کرمان دوغلو رو میگن جمولو در بیرجند رو میگن و حالا پس کلمه دوغلو هم بگم دوغلو اصلا دو نداره سرش که بردشن قلو خیلی کردن که دو هست قلو است و بعد سه قلو چهار قلو ساختن این کلمه ترکیه و اصل کلمه هست دوغلو دوغلو لوب هستند اتصاف و نسبت، دو قلو یعنی توعم حالا میخواد سه تا باشه میخواد چهار تا باشه میخواد پنج تا بنابراین قلو نیست که بشه سه قلو و تار قلو ما ساختیم ساختیم که که که هست فارسیش جمله در فرانسان جیمل و جیمو نمیده هم میگوشم چیه ارز کنم که چه رانیست که توین بشن با و هرها جمل جمل صورت قدیمی میشه که همه اصلا جمع از همونه و گفتن در ودا آمده است که این با یه خواهر با هم به دنیا آمدن منتها سرام روزگار مرگ و بیماری و اینام نبود منتها چون مادرش یک بار خلاف امر خدایان کرده بود و قضایی که برای خدایان حال می‌دیدیم که نادر بود خودش خورده بود یه کله از این قضیه بیمارگیا بی بی کرده بود اینه که خواهر مرده به دنیا حالا حالا مرگانش این تو سر مغفزات که این کنم چه رکنن تخفیف سرن بریزن فلان از این حرفا به بر احمنان کسانی که با خدا رابطه مستقیم داشتن ما که البته نیازم چیزی با خدا رابطه مستقیم ولی با امام زمان دیدیم یه شیخی بود قبلا در دوره رژیم صابق که سر منبر تلفن می آوردن تلفن میکرده امام زمون تو وقت آقا چرا نمی آید؟ والا به خدا راست میگم و این مردم هم اسلام کافی که البسیت آدم در سسته درجه یکی بود و خوشبختانی زیر ماشین دارد قبل یک شیاد بلد و زنایی بود که دو یومیش بعد خلاصه اونهایی که با خدا ارتباط داشتن گفتن که تو کار قلط کردی و این بچه مرده حالا چه خاکی او سرم گفت اون پسر میتونه فیضیه این کارو بره که خوهرش زنده بشه پسر من چه کنه گفتن پسر تو به عنوان اولین بشری باشه که شربت مرگ رو میکشه البته بعد از عمر طبیعی نه اینکه فوراً چون اون که بی‌معنیه وجدانش که, که الان این بمیره مو زنده شه اون که بی‌معنی گفتن اگه جمعش جام جام حالا هنوز شید نداره اگه جام قبول کنه به عنوان اولین بشر فانی قدم بذاره به دنیای بعد از مرگ مثلا هلدر جم قبول کرد و به همین دلیل جم در ودا سلطان و فرمانروای روای مطلق دنیای بعد از مرگ یعنی دنیای تیرگی و ظلمت حالا اون بل شید که میاد که در عوستایی از خشایت ها. ترجمه کردن به معنی تابناک و روشن چنان که محشید و محشید و نام میگورن از که هست گفتن این شید به معنی روشن و تابناکه و جمشید یه محش شهید یعنی جم تابناک آقای دانشمند خیلی درجه یکی که در سن نوت سالیگین سال پیش مورد استاد کولیج دو فرانس بود جورج دیو یه جا البته بدون هیچ توضیحی نوشته که این که ترجمه میکنن جمع روشن، جمع شیط رو ترجمه میکنن جمع روشن درست نیست و به نظر من این شیط برانی پادچا البته پادچا در فارسی باستان عوضتایی از خشایت دید که خیلی نزدیک به اما دیو مزیل اولا معذکی ندادیش هیچ واسه. دوم اینکه بنده در اون حد صلاحیت نیستم که بگم دیو مزیل درست میگه یا غلط میگه. حرام این نیست، بلدم نیستم. بنابراین این فوزوری رو هم نمی کنم او گفته که این رو معنی شاه نه به معنی تابناک. قبلا هم شید ترجمه می‌نين تابناک. ولی دل من گواهی میده که این به معنی طاقناک باشه به این دلیل که وقتی ایرانیا و هندی ها از هم جدا شدن اقایدشون در دو جهت جداقانه سیر کرد یعنی یک دست از خدایان که اهوراها بودن خدای اقوام آریایی شدن که در سنسریف بشونگن این در رید بده بدار در بده بسیار قدیمی احسوره ها و دعوه ها در عرض هم از خدا با یه درجه از خود بعضی که ایرانیا جدا میشن ایرانیا ها سعی میکنن از قدرت دعوه کم کنن تا به جایی که از تخت الوحیت میشنش پایین بعد میشه دیف قرانس دیو همون میشه دیف یعنی خدای مطروط و تا صاحب هم از همین جاست برحال عرض کنم که از اون طرفم هم هندیا هم دهور میرم بالا مقام شد تا بالاخره مهادب یعنی خدای بزرگ مه مه دیگه یعنی بزرگ مهادب یعنی خدای بزرگ بعد اهوراء و اسوران چه شیطان خدای محض در بین نظر به اینکه چنین بو و چنین دور شدنی در بین این دو قمحه بنابراین جمعی که در اونجا پادشاه کشور ظلمته نظر من لقب نقطه مقابلی که در جمع میتونن بهش بدن همون شیده و هنی پادشاه کشور روشنایی پادشاه زندگی بعدم در عوستان آماده است که در دوره جمشید پیلی و بیماری و مرگ نبود حالا داستان چه میرسم میگم ارس کنم که اینه که به نظر من میاد بدون اینکه که در دعوی تخصیصی بکنم و دعوی اطلاعی در این با بکنم به نظر من میاد که همون جمع تابناک دروست تا اینکه بگیم جمشید یعنی جمشاه یه نکته یک نو دیگر هم هست در داستان زهاک میگه زهاک محض اینکه آمد و حاکم شد دو تا خانم در حرمسرا در شبستان جمشید بود به نام شهرناز و هنرنواز به